استنهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ديوالد است كه از این کتاب من در بحث هدایه توضیح من اجازه شکلی که در اون جدول بود که نوشتید بود و ما یک کک عباراتشو توضیح میگه اگر شما دقت کنید در این جدول جا انیزیدون بعد سه تا پشت سر هم الحسن وجهو الحسن الوجهو الحسن وجهوم بعد داریم سه بعدی حسن الفلام ندارد که گفتم بنویسید جا انی حسن حسنون وجهو حسنون الوجهو و حسنون وجهون آه میگه معمول صفت مشفهه یعنی اون کلمه وجه ولی معمول ها سلاس و حالات برای معمول صفت مشفهه سه حالت هست یعنی سه تا حالت میتونید شما متصور کنید برای معمولش ولی معمول ها سلاس و حالات کدومه؟ عرف و بلفائلیه یعنی اگه وجوه خواندی اند وجوه خواندی یا وجوهون خواندی هر شکلی که خواندی رفعش میشه به فاعلیه فاعله برای صفات عرف و منقاعدی هست به, به صفات نمی‌شهد اگر نصب خوندی یعنی خوندی چی وجه حجو الوجه یا وجهن منصوب خوندی و نصب و علت بالمفعول به نصب بنابرای که شبیه به مفعول بشه چرا بگیم شبیه به مفعول برای خاطر که لازمه نمیتونه مفعول برداره پس اگر یک چیز معرفه ایران را نصب داد بهش مفعول نمیگن میگن شبیه به مفعول جد چاره دیگه غیر از این نداره و نصب و علت تشبیه به مفعول امکان معرفتا یعنی امکان منصوب و معرفتن اگر اون منصوب معرفت است یعنی الوجه یا وجه هون اگر الوجه یا وجه هون بود نصبش بنابرای شباعت به مفعول تمیز یعنی علت تشبیه و علت تمیز و منصوب بودنش بنابرای تمیزیت امکان نکردن یعنی امکان منصوبو چی, چی؟ اگر اون منصوب نکرد امکان منصوبو نکرد یعنی وجهن داشت پس معمولش دارای سه حالت رفع نصب و جر رفعش بنابر فاعلیت نصبش اگر معرفه است بنابر شبیه به مفعول و اگر نکره است بنابر تمیزیت است و الجر الرفع و نصف و النصب و و الجر و بالاضافته و اگر مجرور بخوانید وجههی بخوانید یا عل... وهیه ی یکی یعنی صفات و این صفت مشبهه مع کل منهاز الثلاث با هر یک از این سه تا بدون سه تا رفع و نصب و جر وهیه مع کل منهاز الثلاث اما باللام صفت یا الف دارد الحسن است اولا یا الف ندارد حسن ما سه سدوتا ول معمول و از طرفی بله معمول مع کل منواس الست معمول صفت مشابه با هر یک از این شش تا دو سته شش تا معمول با هر یک از این شش تا امام مضافون یا معمول مضاف است یعنی مضاف به زمین که میشه بچو او به لام یا معمول معرفه به علف لامه آه الوچ او مجردون یا مجرد است از اضافه و لام یعنی وجهون خالی خالی خب سه شیشتا اون او تا بود اینم سه تا زد میشه در هم. که پس بنابراین یا صفت ما علف لام دارد یا ندارد این دوتا معمول ما یا مرفوع یا منصوب یا مجرور است حسته تا دو تا شش تا معمول صفت مشبه یا اضافه شده بود یا الف لام داره ال سلام علیکم یا هیچ کدام نیست وجون ورسه شش تا میشه میگه فسارت نگاه می کنید سارت سمانیته اشره یکسمن یا مثلا پس بنابراین میشه چند قسم 18 تا مثال میشه. زمانی تا خب این 18 قسم احکام مختلف دارن. میگه یک قسمش ممتنه. ممتنه یه چی؟ غلط. کدوم قسم بود غلط بود؟ اونی که الفلام دار اضافه میشد به بی فعل ممتنه اونی که ممتنه و غلطه. الحسن و وجبیهی الحسن و وجبیهی الفلام دار اضافه شده الفلام خالد یه. الحسن و وجبیهی این چی؟ دو. این دوتا قلط است. و صحیح نیست آشیه دو رو نگاه کنید نه اینا رو توضیح دادیم ها فارسیش رو تو ادایی نوشتیم لأن اضافه الحسن حسن الى وج زیرا اضافه شدن حسن به سوی وج صحیح نیست چرا اون یه خط ولش برش کنید؟ اضافه اضافت المعرفت عل الى نکرت خط دو اضافه معرفه به سوی نکره چیه؟ جایز توی اون حاشیه سری مطالبی رو گفته که به درد کار شما فعلا نمی‌خوره. پس براورد این اولا اضافه الف لام دار به الف دار در چه اضافه‌ای درسته؟ اضافه لفظی یا معنوی؟ اضافه لفظی. از ظاره بر رجله یادتونه تو بحث بدل خوندی اضافه لفظی الف لام دار دار اضافه بشه اشکاری؟ نداره. اما الفلام دارده بی الفلام غلط است سهی همینطور الحسن وجه الحسن وجه هم درست بعد مثال بعدی وقتولفه فی حسن وجهه اختلاف شده در عبارت حسن و وجهه. یه عده اینو قبول کردن یه عده قبولش نکرد یایتونه یا نیست عده که قبول کرده بودن مگفتن چی؟ مگفتن اضافه شده و اضافه در اینجور مواقع مفیده چی چیه؟ تخفیفه تخفیف هم حاصل شده چه تخفیفی حاصل شده؟ تنوین حسن حس شده اصلش بوده حسنون وجبوهون صورت اولش یک حسنون وچه بعد یه زمین در حسن مستطر کردیم مجبور شدیم وچه رو دیگه چیکارش کنیم نصبش بدیم بشه شبیه به مفهور چرا دو دوتا فایل که نمیتونه برداره شد حسنون یه حوضتوش وچه بعد حسن رو اضافه کردیم به وچه وجی حسنو وجی و, حسن و, و مغیر تخفیف هم هست چی شده؟, شده؟ و در اضافه لفظیه شما تخفیف میخواستید اینجا تخفیف حاصل شده. این حرف این ال دی جی رو قبولش کرده. ای که قبول نکردند میگن راه کار اینه که شما بیاید این طور بگید بگید یک حسنون وچه یک حسنون چی چی؟ وجبوهو. دو زمیر وچه رو بیارید در حسن مستطر کنید دو بشه حسنون یه خوبتوش وجه سه الفلام به جای اون زمیر چیکار کنید؟ به کلمه وجه بدید بشه چی؟ حسنون و و الوجه چهار الوجه رو منصوب کنید بنابر شبیه به مفعول چون دیگه نمتونه فاید باشه بشه حسنون و الوجه هم بچی بکنید کنید حسن رو اضافه کنید به الوجه بشه حسنون و الوجه در واقع اینجا دو دا تخفیف حاصل شد یکی چی؟ حسب تنبیل و یکم حذف شدن زمیر و مستدر شدنش و زمیر یک اسم یک کلمه است میگه اگر قرض از اضافه شما تخفیفه شما باید اعلی تخفیف رو در نظر بگیری نه عدنا تخفیف را چون اعلی تخفیف اتفاق نیفتاده است چون اعلی تخفیف اتفاق نیفتاده لذا این صورت مورد پذیرش پس بنابراین این مختلف فنفی هست یه ادهی نظر به تخفیف ها میگن درست است. یه ادهی میگن تخفیف کلی صورت نگرفته خلال درست این مطلب با آشی عربیش رو هم اتا تو کتاب براتون وقت ففی حسن و وجهی عمل و واقعی خب دو تاش مرتنه یکی شنجی. مختلفون فی. بقیه چی؟ عمل بباقی فل احسن زوززمیر الواهی احسن و خوب اونیه که دارای چیه؟ یه دونه زمیر باشه پایین میگه لعنه زمیر فیه به قدر الحاجه زیرا زمیر درش به قندازه حاجته من غیر زیادتن ولا نقصان بدون زیادی ها کمی توش باشه اندازه داره صفت با شبهه باید رابط داشته باشه به محصوفش اینم یه دونه زمیر داره به عنوان رابط اما این چیزی نازم زو زوززمیر الوار زو یعنی چی؟ صاحب صاحب زمیر تنها و خوبه تس اتون این احسن چند تاست؟ نه سه تا اونجا بود اینم نه دوازدن ول حسن یه دونم داریم حسنه قسم حسن کدومه ؟ زوز زمیره این اونیه که دارای دو زمیره پاییم میگه لیشتماله ای الان زمیر زایدن علاقه در ناجد چون این کلام مشتمل و یک زمیر اضافی بر اندازه حاجت انسانه چیز اضافی هم کلام رو قبیل میکنه دیگه لذا از اون احسنیت میدازه میاندش میکنه چی؟ حسن ولحسن زوز زمیره این و حوه اثنان اینم دوتا دوتا و نه تا یازده تا یازده تا و سه تا چارده تا درست ول قبی قسم بعد قبی هست الخالی من از زمیر اون قسمیه که خالی از زمیر اصلا زمیر رابط ندارد اونی که زمیر رابط ندارد و خالی است چرا میگه به این دلیل از صفت مشبهه ما باید رابط داشته باشیم وقتی رابط نداریم از این جد بهش میگم قبیل میگه وقتی رابط نداریم و بیگه غلط میگه در ظاهر رابط نداریم در ظاهر رابط نداریم ولی در باطن رابط رو چکار میکنیم تقدیر میگیریم مشخصی ده نه؟ رابط رو تقدیر میگیریم هر کجایی که رابط نبود رابط رو تقدیم. چون تقدیر میگیریم کلام غلط نیست ولی چون مستلزم تقدیره و اصل عدم تقدیره از این جد داشت میگیم این کلام کلام خوبی زشته و القبیح الخانی من از زمین و خوبه عربر حالا که خوندم از روش و مطالبا میدونید جدول رو نگاه کنید جا انیزه ای الحسن و وراتور بس دیگه الحسن و واجب هو چیه جوانی زیدون الحسن و واجب بود چیه احسنه گوهش نوشته دیگه رفعش چرا احسنه به دلی که واجب میشه فاعل الحسن و یه رابط اونم هوی واجب هو بیشتر همه چیش تو خورد جا انی زیدون الحسنو یه زمیر رو عباد توشه وجه ههو منصوب شبیه به مفهول این قسم چیه؟ حسن؟ چرا؟ چون دو تا زمیر یکی زمیر وجه ههو یکی زمیر مستطل در همین قسمه سه بامی جا انی زیدون الحسنو وجه ههی میگه این غلطه به چه این غلطه؟ الف لام دار اضافه شده به بی الف لام, الف لام دار اگه به بی الف لام اضافه بشه غلطه بیاید بعدی خب اینجا وجغور مضاف بود معمول ما اضافه شده بود بزنه وجغور تو دومی معمولمون معرف به الف لام جا انی زیدون الحسن و الوجو میگه این قبیل چرا چون الوچه و فایل الهسن رابط نداره رابطش چی تقدیر میگنن یا منو تقدیر میگنن بوده الوچه و منو یا میگن خود الفلام عوض از زمیره رابط خود این الفلامه دوتا نظر جا علی زیدان الهسن و الوچه این چیه احسنه چرا؟ چون الوچه شبیه به مفعول الهسن هم یه زمیر جا انی زیدون الحسن و الوجه این هم باز اقسنی الفلامدار اضافه شده و الفلامدار چشکار نه اضافه لفظیه و یه زمین هم داخل الحسن هست کامل هست الحسن و الوجه بعدی رو نگاه کنید جا انی زیدون الحسن و وجهون که اینجا معمول ما دیگه چیه نه اضافه شده نه الفلامدار وجهون جا انی زیدان الحسن و وجهون. اگه الحسن و وجهون ماشه چیه؟ قویه چون وجبون میشه فایلیش رابطی نداریم مجبوریم تقدیر بگیریم تقدیرش چیه؟ منهون وجهون منهون صورتی از اون دومی جا انی زیدان الحسن و وجهون این چی میشه؟ وجهون میشه تمیز و احسن یه زمین هم تو حسن تو اون حسن نیست جا انی الحسن و وجهن این چیه؟ بلطی چرا غلطه؟ الفلام دار زاخشو دبی حالا بیایی جا انی رجلون جا انی رجلون حسن و وجهون سلام ده. حسن وجههو اگر حسن وجههو باشه چجوره؟ میگه حسنه وجهو میشه فایل یه رابطه حسنون وجههو باشه چه داره؟ حسنه دوتا زمین شبیه به مفتا حسنون وجههی باشه چیه؟ مختلف انفیه. چرا؟ چون بعضی میگن تنویل افتاده؟ و با قول معروف این چیه تخفیف حاصل شده بعضی میگن باید زمیر رو هم از می‌کرد تا اعلی تخفیف حاصل می‌شد نظام مختلف بود اختلاف شده یه انتقبول که این معمول ما اینجا مضاف بود دوست دومی معمول مولف برای عربی جا علی رجل حسنون الوجه قبیر چرا قابت نداره در اصل الوجه قائل رابطی یا باید بگیم الفلام رابطه یا یه منحج کار کنیم <تصفيق> تقریبیم <تصفيق> جانی رجلون حسنون الوجه این احسنی الوجه همیشه شبیه به مفهول حسنون رو یه رابطه هم بره احسن جانی رجلون حسن نول وجه چه درسته احسنه چرا؟ چون یه زمیر داخل حسن مستدر و حسن هم اگر نکته اینجا داره حسن هم اگر اضافه شده و الوچ کس به تعریف نمیکنه که تونسته صفت بشه برای رجال چرا؟ به دلیل اینکه که اضافه اضافه لفظیه اضافه لفظی مفیده بگیر اضافه لفظی مفیده تخفیف مفید تعریف نزا اخسن بعدی نگاه کنیم جا انی رجلون حسنون وجهون حسنون وجهون دیگه چیه قویه چرا چون وجهون میشه بایر رابط نداره بعد دیگه بوده وجهون من جا انی رجلون حسنون وجهان وجهان میشه تمیز و یه زمیر تو حسن هست کاملن درستن جاعنی رجلون حسن و وجهن این هم میشه از بسم احسن چرا؟ به دلیل اینکه آه. نکاره به نکاره اضافه شده یه زمین توی حسن هست دونبان حال خب این مطلب از صفت مشبهه تمام شد اونجا خود دید. اینجا هم باز تکرار کردیم بیایم سر الخامس و اسم تفسیم پنجم اسم تفسیم اسم تفضیل اسم تفضیل میگن این اسم تفضیل گفتن بهتر است ببینید کردن میگه افعل تفضیل چرا میگن چون بعضی کلمات مثل خیر و شر می‌دونند دو ادای خوندی از وزن اصلیشون چکار کردن ادول کردن شده خیر شر همزه به خاطر کثرت استعمال افتاده میگه اگه ما بگیم اسم تفضیل شامل اونها هم میشه اما اگه بگیم افعال تفصیل شامل اونها نیست مگر بگیم به اعتبار اینکه در اصل افعال میدونه به اعتبار اینکه که در اصل افعال میدونه می لذا اسم و تفصیل. و هوه مادر لعلا موسوفه اسم تفصیل اونیه که دلالت بر موسوف میکنه یعنی فسف گفتیم اسم تفصیل هم غالبا به معنای فاعلی مثل عالم یعنی آلمتر، افضل، فازلتر و گاهن به معنای چی میاد؟ به معنای اسم مفعول میاد. مثل اعرف معروفتر، اشهر مشهورتر، اعظم معظمیتر. میگه هوا ماده لعل موصوفن، حالا میقادون موصوف فاعلی باشه یا مفعولی؟ اما به زیادت این علا غیره این غیر همه رو موصوب با زیادی بر غیر خودش در اون سفر موصوبی رو نشون میده که زیادی دارد در اون سفر بر غیره به زیادت این علا غیره میگی خود چیه؟ میگه و خوبه افعل مزکره صرفم میشه ها افعل افعلانه افعل ملا احلاهم امکانشون ممنون. باعث افزایش مزاحم فعال المانداس این معتقد اوه فرق اسماآل بسنا، علی اسماآل، علی بسنا، علی چون جامع مکسره معمولی مفرد مانداس باش میشه لذت ببر علی بسنا. مثل اکبر، کبرا، احسن، حسنا لرموانمس افعال و تفصیل با یه سری شرایط ساخته میشه که خود نیتر جتا به ادایه الا من سلاسیه. یعنی من فعل سلاسی ساخته نمیشه افعال و مگر از فعل سلاسی باید فعلش فعل سلاسی بشه چون اصلا قالبش برای سلاسیه روایی باشه ما دو تا لام که نداریم کجا بزنیم باید یکی لاماشو اصلا اصلا فعل غانب این افعل برای فعل سلاسی روی شده و لا یبنا الا من سلاسی تام من اون فعل سلاسی باید فعل تام باشه فعل ناقص نبوشه یک ما نمیتونیم افعل تفسیر درست کنیم چرا چون افعل تفسیر میخواد دلالت کنه بچی زیادی وصف زیادی یک سفر حیاتون باشه کنیم افعال و تفصیل اصلا معنای وصف چیست فعل ناقص اصلا معنای حدسی و وصفی نداره فعل ناقص فقط نقشش رد اصلا معنای مستری بگی اف و تفصیل دلالت میکنه بر معنای مستری اضافی یعنی وقتی شما میگی افضل یعنی مردی با فضل تر این فضل همون هده <تصفيق> کسی با فضل تر یعنی موصوفی با فضل تر فعل ناقص اصلا هده نداره که شما بگید موصوفی با معنای مستری بیشتر اصلا معنای مستری بگید نزا از فعل ناقص ساخته نمیشه شرط بعد اینه متصرف باشد متصرف یعنی چی؟ یعنی جامد نباشه اون فیل مثلا از فیل لعیسه که حال ناقص هم از از فیل نعمه ما. ها؟ هب بزار از این نو فیل ها ما نمیتونیم عفل و تفصیل بسازیم. چرا؟ به دلیل اینکه اینا غیر متصرفن غیر, متصرفن. غیر متصرف اسمش روشه یعنی چیزی ازش مشتق نمیشه پس با هم افعالو تفضیرم ازش مشتق نمیشه ما نمیتونیم ازش دارست کنیم متصرف هم نمیشه قابل لتفاظل فعلی باشه که قابل تفاظله یعنی قابلیت داره که یکیش بالاتر از دیگری باشه یعنی میتونیم تریت بهش بدیم مردن مثلا چیزیه که دیگه مرده تر ما بگید نداریم انسان یا زنده یا چیه مرده اگه زنده است نفس میکشه و آثار حیات داره اگرم هم مرده مرده دیگه دیگه ما یکی رو بگیم مرده تر ما نداریم. لذا هیچ هیچ‌وقت نمیتونیم از ماطف علو التفسیر درست کنیم بگیم زیدون اموت من امره ام عم اموت من چیه یا مثلا از ماده فنا فنا یعنی چی؟ نیستی نیستی یا انسان هست یعنی موجود هست یا نیست دیگه نیستتر بگی نداری نیست یعنی از این وجود رفته دیگه نیستتر نداره نمیتونی بگیم افنا درست؟ نمیشه همینطور وجود وجود یعنی چی؟ هستی اگر هستی وجود پیدا کرد یعنی یه چیزی بود ولو مورچه باشه یا فیل در هستی با هم یکی اند هر دو هستند دیگه هستی تر نداریم دیگه نمیتونیم بگیم اوجن مشخص شده نه لذا میگه قابل نتفاضل بعد قابل تفاضل این شرایط رو توی دایره نفوذ دا تا تام با قابل شرط بعدی غیر مسوق منها افعال افعالو غیر تفضیل شرط بعدی اینه که افعال برای غیر تفضیل بگید نداشته بشه یعنی افعال صفت مشبهه بگید نداشته بشه مثلا از حمرتون همره یعنی چی؟ سرخی از این دیگه افعالو تفضیل درست نمیشه چرا چون صفت مشبهه ازش دیدیم چی؟ احمر؟ و دیگه چی داریم؟ همراه مؤنث هم. اینو تو ادای خوندی. ولی به زبان دیگه. هدایه گفت چی؟ گفت باید رنگ یا عیب نباشه. لیسا بیلونن و را عیب. لون و عیب, لون و عیب نباشه. لون و عیب نباشه عبارت میشه یعنی که وزن افعل نباشه. چون اگه لون و عیب رو داشته باشه صفت مشبهه بر وزن چی میاد؟ مثلا اعما اعما یعنی چی؟ کور اعما یعنی کور مهندسش میشه چی؟ امیا اعور یک چشم مهندسش اورا پس بنابراین اگر بر وزن افعل فعلا داشته باشه دیگه سفت و بر این وزن داشته باشه افعال تفزیل نمی حال نتیجه میگیره نگاه کنید وقتی این شرایط دونستید فلا یبنامه ده دهرجه قصد بنابراین از دهرجه دیگه ساخته نمیشه چرا؟ چون سلاسی نیشه همینطور از مثلا کلمه زید یا رجل هم ساخته نمیشه چرا؟ چون اصلا فعل اول اولا باید فعل باشه سانیه هم باشه از نعمه هم ساخته نمیشه چرا؟ ها؟ چون متصرف نیست دبینید نگو... نمیدید رو تام ما. اینجا جا از ساره هم ساخته نمیشه چرا؟ هم. چون تام نیست شد. و از ماته هم ساخته نمیشه چرا؟ هم. چون قابل تفاظل مشخصه ولا من عویرم یعنی یک چشم میشه؟ و خزره یعنی چی سخت شد و هموقه یعنی چی احمق شد نادان شد درست؟ از این ستان ساخته نمیشه چرا؟ چون افعال و اگر بخواد که از یه چیزی صاف شد باید صفت موشبه بر وزن افعال از اون وزن نمیشه دستوی که اینها داریم از اویره داریم اعور یعنی چی؟ یک چشم خزره داریم اخزر یعنی چی؟ سبز مهندسش خزره و از هموقه هم داریم چی؟ احمق مهندسش همقا چون؟ پس بنابراین از این ستا ساخته نمیشه لمجی اعور اخزر و احمق لغیرهی لغیرهی یعنی چی؟ یعنی غیر اسم تفصیل چون از اینها افعال برا غیر تفصیل این فعین فقد شرطو حالا اگر یک جای شرط باقت شد یعنی یکی از این شرایط که دیدیم نمی مثلا فرض کنید که روبایی فعنفقه فوق شرط چی کار میکردیم توی دایی؟ از فعل افعال کمکی اشد و اکثر و عبلب و این جور جوشیزه استفاده میکنم میگه فعنفقه در شرط اگر مفقود شد شرط توسطه را به اشده و نحوهی توسل میشه وصل پینه میشه با اشده و همسال اشده مثل اکثر و عبلب و اینجا شد؟ مثلا اگه از ده رجم میخواستیم از قلتیدن یکی چیز کنیم میگیم چی؟ میگیم زیدون اشد دو ده من منعم اونی که قرار اقار تفصیلش قرار بدیم منصوب به عنوان تمیز بعد از اقار تفصیل میگه منصوب به عنوان تمیز بعد از مثلا اگه از سرخی یه چیز بخوایم تعجب کنیم میگیم زیدون اکسرو افعالا تفصیل بیاریم زیدون چی؟ همرتن من امر. همرتن میشه منصوبش میکنیم بنابرای تمیزیت بعد از افعالا میشه میگیم می خب پس این که مثال میزنن احمق من حبنقه حبنقه از که کسی میگن احمق و من حبنقه, حبنقه احمقتر از حبنقه این احمق و نقه که افعال تفسیب گفتن این چیچیه این چرا بس افعال و تفصیل ساختن میگه این شازون شازون یعنی چی؟ یعنی قابل قیاس نیست اینجا عرب بقیر محلومی یه دونه رو درست کرده اختیار زبانش در سمودشه این کار کرده خلاف قانون شما خلاف قانون حق نداری احمق و نقه میگه شازون درست نیست که تو برش قیاس بود آدم احمقی بوده در بین عرب ها این پایین هم دوتا حکایت از ایشون نقل میکنه میگه این آدم احمقی بود میآمد از این مهره ها و قرمهره ها میداخت گردن و خودش بعد اینا رو واسه چی میندازی گردن میخوام گم نشه. یه شب برادرش اینا رو انداخت خودش شد. قابید صبح بلند شد با حالا تو من شدی من دیگه کو... من دیگه نیست شدم من کجا رفتم بعد یک داستان دیگری رو نقل میکنه پایینش میگه و ومن همقهی میگه از احمق بودنش یکی شمین انهو فی جماعته این در بین یه جماعتی نشسته بود فحبت علیهم ریحون سودا میگه پس با باری وزید بر اینها یک بادی شازلا و عبیزو منند میگه هم عبیزو منند یزو منند یعنی در از شیطه ایلی براش میگه با از عبیز اومد از که ازن عفلو دستوید که نباید چرا؟ چون از این احقال و به و از جناهه خروج بایزا نمیده به اینکه نزیده به عبیزو که یعنی بود. بود بود بود بود بود. در استعمال هم. جلسه سی.